گیران یا مردمان زنگی شاوران شو که تخت سیاهوش رزید اوز انکه ترسی دیدید و شکر سیاهوش به اینکه از اون شاد گرشد به اینکه اینطور و که دشمن همی دوست کرد از آخش کجا بردم از بایر سر دیگه این آوه بندش نزده یاد کرد دردنی در درد. که من با جوانی یافتم تحدی کو بعد کی آتش را از آن آتش نقش شاکر جهان دل من کرد اندام خان شبتیان می اون درد من ز گلو تنه من سلام گرفته باگرد شد به وایس فوز آتش سوزش مرو دوز تو دید او دگری دگری و من ننگو خالی چه جم اومدم در به چنگ نهنگ آمدم تو کشور بدان آشتی شاد گشت، گره شاد، چونتی تا خودار گشت. نیامد آمد همین هیچ کارش پسند، خوش همان و همان بود بند. تو چشمش زدی داری من گشت، سیر، برای سیر دوده نباشی نیستی. دشاری، نباید آزو به حوزه ها، شدن من زغم دردم این خشده ها. ندانم که زین کار گردن سکه، چه دارد درای مزنفت فردود بخنا را کن در جهان تاج تا تا و تبیان را سفار دمترال تاج و ترده سرار سمان گنجا و و تخت و جام درخش و سوالان و تیزان و تو تویی در بیاید فرداد و تو توییم هم به اون را تویی دا و دل با شو محسیده کرد بیست همین درم نیست چندان که بودش کتا دیگنا و از گوهر شاهواز سر از تی گزیده به درستان ترستان درستان کمست از خلا سفرمون تا پیش اوی آورند به درستان کمست بشنند. مزانت که را بخواند دخانتان و آبایست چندی دران. شنین که از نزده را دیاد، بودشت هست میگان به دیگو دیاد. یکی را، ایمن به ایمان ایمن ایمن ایمن به دوی همین سازم از نوی شدن که رو همین درد براید کدن همین دوی بحران داری که <t> <خواست مختصراتی> همین دوست دارن زمین به پیش یا وقت شد خیال نمی که اشکالی داشت وقت زیاد سخت نمی نامه مینیتس پدرش اولا وقتی پیغام میرن که اصلاً محبت کرده و چیز کرده نه از یه طرف شاهد میشه که خوب براخره راهی داره میره از یه طرف هم میشه که باید از پدر به دشمن پناه ببری و نامه می پیش پدر میگه که من اونجا زندگیم بد بود پیش پدر اول درد من شبستان بود بعد بعد از کوه آتش میگذشتم که آهوی دشت سرنوشت من گریه کرد بعدم از اون خفت و خاری که کشیدم پاشت آمادم جنگ که راحت باشم. ولی اینجا آشتی کردن و همه مردم دو آنبکت از این آشتی شاد شدن به روز پدر من حالا که از من سی شده و دیدار من نمیخواد من رفتم بعد هم سپاه میده می دست بهرام میگه تو اینجا باش تا توس بیاد و بسپورت همه چی رو بوده هست تحبیل در حقیقت میگه تا هم تحبیل بعد نره یه مقدار مختصری، 300 سوار و, و رو بود، دیدید که تن چیست برمی داره و بعد نکته خیلی جالب است که پیش سرداران سفاه نمیگه من کجی برمید، اینکه نمیزشتن اینکه میگه آمده این طرف آب و پیغام سری داره، پیغام محرمانه داره برای من و من میرم برای اینکه اون پیغام بگیرم و شما اینجا هستید، بحرام هست بحرام بزرگتر شماست، در بیابن، فرمونده شما و برید اون چیز کنید و من میرم به استقبال پیران، شما هم اینجا باشوند میگم چه این کل رسته هست. اگه سوالی دارید توی اینجاها چیزی رو نفهمید، بگیر من بگم بگو خطی من دکنه، بدهن پیران بدهن آب مرز دو کشور سیحون جیحون بوده اونا اون طرف بودن سپاه ایران این طرف میگه پیران از اون بر پیران نخصوزیر از صدر ازم و افراسی میگه پیران از اون طرف ماده این طرف پیغام احرانه برای من داره من, من چیزی میخوام برم پیغام بگی ایران استقبال او یه و تو سوارم مختصری سوارم برای میداره به عنوان اینکه میره به استقبال پیران تو میتونی بخونی آرش؟ ما که دوام راه هست، راه تو خواهید بخون چه خرشید تا چه هوا شد سیاه نه، اون کاما که میذاره یعنی این میچه بعد هوا شد سیاه شد دروش به کشید عذاب دو رو کشید عذاب دو رو خش چه آمد به ترمز جاییست ترمز اسم جایز. چه آمد ترمز درون با و کوی به سان بحاران بود چون این هم همه شهرها تا به تو عروسی، با چه اسم شهریدی به هر منظری ساخته خوردنی، خورشها و گسترده چنین طابق اچگار باشی, باشی، اونم اسم جایی است چنین طابق چنین اچگار باشی بران، برود آمد انجا و چندی بمان. چه آگاهی آمد چه آگاهی آمد پذیرش شدن, پذیر شدن. نفه میده یعنی چی؟ سمانی دلن درست نفه میده. وقتی خوار بسید به اطراسی آف که سیاهاش آمده استقبالش کردم. پذیره یعنی استقبال. همه سرکشان با طبیره شدند. زخیشان گذین کرد پیران, هزار... یعنی کر پیران هزار... چی؟ پذیره یعنی چیست؟ من کنون شهرم رایدم که بله. زخیشان گذین کرد پیران هزار طبیره شدن را همه باندار. دیا راستش چار پیل سپیل سپن را همه داد یکتر نوید نوید نوید یکی برنهاده زفیروزه تک زفیروزه تک یکی برنهاده زفیروزه تک درفشان درفشی به سان درفش به در بافته پنیان درخش سرش ماه زرین و بومش بنش قبار سخت زرین فتیل دیگه به دیبا بیا راست سر به سر پس اصل گرام های با بازی نزد به در اندرون چند گونه گوهد سپاهی برانستان که گفتی سپه بیا راست روی زمین را به نه چ چوبشت بکنید کام سپاه تدیره شدن را بیا راست شد درف شد که تحت آر پیران بدید خروشیدن پیرو افتان سوتیزودگس از کنار فکر در کنار به کوزی گفت کی دود گفت چرا رنگی کردی روان را برای همه بردل این بود نه که بیند دو را صورت تلورب پیران سر سیلان او همان گوش دلارای او همین گفت با کردگار جهان ای داور آشکار نهان، نمان yup. مرا خواب این نمودی روان همانان سر پیز جشتی جوان چه دیدم را روشن و تند روز نیایش کنم پیش گردان نخورد ترا چون پدر باشد افراسی ها همه بنده باشند از این دنیا مرا نیست که وست بیش از هدار ترستندگان هست با با با قرار گرفت از با پیر به رو بهره ترستش تو بنده می بسیار حالا من اینجا چیز کنم تبییره یعنی طبل و پوس و اینا و اینجا میگه که خود مردم اولاً صبر خوردن بود جاها و چهات و ترمز و دچه و اونجا موند و از اون طرف هم خبر آمده، و از اون با دم و دستا آمدن به استعبال سیاوهش و پیران آمد جلو پیران adam sibe به mandii خیلی معروفه وزیر بزرگ افراسیاب به همیشه اصلاح نیتش خیر و آستی و اینا بود پیران میاد دیگه دو زیاده میگه یه روزی که اینجا توجه تهاجم میکنید این همه ما خوندیم هیچ جا برای علم پرچم نگفت یک صفحه کن پرچم نگی دلیل این است که گفتم پرچم، اون من منگوله که علم آویزم اینکه دم گاب تببتی بوده و به غلط حالا پرچم دیگم، خدمت زیر پرچم اینام مزد کرده برگم اینکه اونجا اولی که میرسند گفتم یکی از رسم این بوده که رفت میرسند با هم جزه تارخات معموله اینکه راه رو چه سهی کردیم برای اینکه اون راه هنوز پرواز هوافه ما که هستید مثل 14 ساعته 12 ساعته 11 ساعته از اروپا آدم میره به امریکا و این اکسان و امریکا قرب بازم میگن پرواز چطور بهتون بد نگیدن چید پرب نگیدن اون که منزل به منزل سوار است بشه و پایین بیا و پرش پنگ کن و دوباره فرش جمع کنه و قضا و خروف زد بشه دوز بیاد و سرش اینا که اولی که می ریستیدن می پرسیدن که این راه رو چه جوزهی که دید یعنی انشاءالله که خیلی سخت نبوده و بد نگیزش که بهتون بارها مثلا 50 بار این در جانامه جز احوال پرسی این مطلب تکرار یکی هم تا می رسند اولا همدیگر رو می بوسن. اینا مسئله مهمه که باید توجه داشته بشه می رو بروموشند می که گرفت سفهدار پیران،, سفه پیران بدید خور بدید سیدن پیلو از پانشنید بشد تیز و هم در کنار خیلی سریع رفت پلوش و بغلش کرد سر روی همگه رو رو سیدن پیران میگه دست و پای و بعد میگه که من اگر خواب میدینم دیدار تو رو جوون میشدم البته پیران اسمش پیرانه ولی پیرم بوده یعنی میگه که سرم سفیده میگه من این سر سفیدم سیام شده تو رو به خواب دیدم. حالا چقدر خوشحالم که تو رو تندرست و چاد میبینم و اینجا همه هیچ نگاه نباش افراسی مثل پدر تو. منم بعد میگه که تو را چون پدر باشد افراسی همه بنده باشند از این روی آب باز این روی آب همینه دیگه جیهون مرد بوده این وقت اون طرف میگه این طرف آدم که اومده همه بنده این ناراحت نباش بعد میگه که حالا افراسیاب که مستقدر توست ولی من بیش از بیش از هزار تا بنده دارم با گوشوار این این گوشوار غیر از اون زینت این حلقه ای بوده که گوش گفت میکردن به علامت بندگی و توی داستان های آمیانه اوینا میگه ولی بله اگه تو مثلا فعلوان میگه تو تو هنوزم میزدی من حلقه بندگی تو رو به گوش میکشم میکنم میگه که بیش از هزارت بنده دارم با گوشبار اینه و این حالا دوستان گوششون میکنن اینا من پسرا، این مثل اینکه مفهوم شد درست نمیدونن که <تص> این نشان بردگی بوده افتخاری نیست. ولی خب دیگه مادی دیگه حالا دیدم که پاش من پشت پاش و هم پشت پاششون مارک میزنن و جاپ میکنن لا دی بعد پادشاه شاه یه گوشوار زینت داشتن درست بله این که میگه که بنده حالا شایدم. اون حلقه بندگیرم اون بابا برای اینکه تعیون و تشخص خودش رو نشون بده غلاماشو هم به لباسای خیلی عالی را می‌برده اسبایی خیلی خوب میداده برای اینکه اینا که متعلق اینا رو هم راه از چشم صاحبشون می‌دیدن وقتی غلامش آراسته باشه اون زیباب با اون با قشنگو اسب خوب بودن روزوار قشنگ اینا میان پاپا این پارتی فلان جاست اینجوری درش می‌دن بعد بعد میگرد به خودش من اگر با پیر سرز پرستش پرستش یعنی پرستش نی خدمت و کردن پرستار هنوز به این معنی هست پرستار یعنی کسی که خدمت میکنه بیمار و اینا رو اینکه پرستش فقط یعنی عبادت خدا کردن نیست این چیزی میگه برای پرستش یعنی برای خدمت خب دیگه چیزی که چه سوالی بومش بنهش همه این چیزو رو نگاه کن یه درفشی بود سرش یه ماه بود تو چرا اینو بودی؟ اگه دفتیسی نزن، این را دوشین علم سیاه چوب داره که این پارچه علم هست سرش هم یه هلال ماه میذارن دیدی؟ یاده پس؟ اینو بشیم گرن منجوق منجوق علم یعنی اون چی؟ اون ماه چه؟ ظاهرا این ترکی باشید عرض کنم که الان اون کلمه مونجوق که در فارسی یه چیز میذوزن به لباس برق برق میذنه میگن مونجوقوزی این همین منجوقه که به اون صورت در اومده منجوق معنی اون ماهچه علم نیست به صورت هلال چیزی سر تو به علم بود علامت ماه و اینگه که درختش که میگه به ذر بافته پرنیان درفش پارچه هلیره، پارچه عبریشمی درفش رو با ذر بافته بودن ذرش ماه ذرین بود، بومش یعنی اون پارچهش هم برنشو. رنگ پارچه گستردنی چه؟ فرش؟ چه هم دیگه خوردنی داریم و خوشیدنی و گستردنی و استادانی برای اینکه شامله همه جو پخش میشه. قرمه این عالی قیمت زندان جدید شدست. پخش می‌شود. بوم همون بوم که وقتی تزرزمی میشه اینجا این همون. این من نه من... این وانی پارچه است من نمیدونم توی نقاشی الان این, این پارچه که میگه در نقاشی که روستاپلم میشه نمیگم بوم بوم. من نمیدونم میتونیم فرنگی یا فارسیه. شاید ای فرانگی رنگم بوم رو مانی هست. قرار معنی خاصی كده. 이게 هر یک از علما بوتخونه. شما میخواید بخونی آقای میرفخرائی؟ سعی در ترجمه شادید به هم و اون یاد کردن تاریخ شکن همین شهر از آواز شنگ همین خود من, من خواهد. خواهد مشکل شد همین از, از, از تازی تازی بله، چشم و خشم. حالا، من از آمده. تیار آمدهش ستان. به کافل دل... ستان. میدونی در این قبیل جهان نستلژیه دیگه. آمده توی مملکت دشمن میبینه قشنگ اینا بعد خب باید چیز کنه دیگه. باید شاهد بشه. ولی یاد مملکت خود شو، یاد روزگار خود شو، یاد بکیگی و اون. محبتی که در زابلستان بهشون کردن اونا میفته اینجاست سرنوشت حقیقتا نمیدونه با اینکه میگن که چیز به اصطلاح دروغ هم نمیگن ولی به حرت سرزمین خودش نیست اینه که ناراحت میشه و گریه میکنه بله بعد یاد یاد و کابلستان میفته که به خاطر میگه که آمد به مهمانی پیرزن بله داران از ایران دلش یاد کرد و بسود به که دار آتشت همین بفت بود به پیران در دوشید و پیچید بود به پهوت بگید اون... آن بمودر روشو کرد اون طرف اشت آمده بود به چشمش ناراحت بود روشو اینجوری کرد که پیران نبینه یعنی خب پیران پیران بوده تجربه دشه حس که من به و در به دو در به دو دار به دو تو دیرمان همین هزمان نام گردان در کنید چون گفت که نام روشت به شاهانی دیستی تویی رفیاد دارد که چیز است بر تو که جهان کسی نباشد به توکنی های یکی آن که توکمه که همین از توی دیران نجا و دیگر زبانی راستی به دیگه که که از چه سطور به همین برزرین نکنیم چون این دارت پاسخ سیاوش به جوی ای پیر پاگیزه راستور کنیده کنیده به گیزی به من و از آخرمنی دور و دور از جفا. در این دون که در این دون که با من تو پیمان کنی پیمان کنی شناسم که پیمان من نشونیم گرد بودن گرد بودن ای در من نکوییست نکوییست بر این کرده خود بر کرده خود نباید, نباید گریست بگر نیست فرما... فرمایی دارن نمایی ره کشوری دیگر خیلی خوب این تا اینجا باشه و اینکه مدد برگرد یه پیران دیده شد، سیاهشان ناراحت شده بود و اولین قدم ها بسید میرفت و یاد دابل افتاده بود و گریهش گرفته بود و بعد میرسن به قجغال باشی اونجا میشینن دیگر. میشینن و هر میزنن، ایران کیره در مقدر و و رفتار و گفتار و سیمای سیاوهش و بعد بهش میگه بهش میگه که تو سه چیز داری که هیچ کس نداری هیچ کدوم از شاهان و شاهزادگان نداری اول اینکه از از نجاد کیقوباد مثل اینکه بعد تو نمونه کاملش از تو گیرن توی نجاد یعنی هر چه زیبایی یا برازندگی در نجازی تای هست همه در تو هست این اول و دیگر زبانی به دین راستی برای خاطر اون ستا قمخش افراسیاب چیز که تاج و تخت و همچه گذشت گذاشت و میگه رفتم در دن اجده راستم میگه بایدم سرش قباط اه... نرانی تو روزانه خواهران میخوندم ماهد که حاج علی خان پخ پخ حاج علی خان و فرمان قصد امی گرفته و آورده قصد به لخره میگه که من بسیت میذاری بکنم اینه پیغام میذاری به زنم بدم میگه نه میذاری همونو تموم کنم بیام سر بینه میگنم میگه میذاری که من نحوه مرگم خودم انتخاب کنم میگه بله بعد اون جلاد میگه تو نیشتر داری میگه بله نور میشاره میره میگه رگای می منو بزن شریان میزنه البته وقتی که همه خون خالی بشه شریان میزنن دستاشو می میزنن هر دو تا رگ که بازوشو نشسته بوده خونم فعباره میزده یه چه شعر شعر فرانی که سر شریان، در این میزنش باز میشه و دور میشه هست یعنی دیگه هیچ چود چارفتیش میشه نشسته او در حالان خون نگاه از بس میمز که در زم حراسانم بوده صبر نمیکنه که همین کاری که خودش گفته که موافقت میکنم تو به هر نرکیم که این بمیره میبینه طور کشید یه قدری صدا میکنه دوباره از سر جلاد رو که رفت دو سر بینه. میگه بیا بیا میاد بله غربا میگه وقت داره میترد دوستر راحتش کن که بعد میگه که زد با لگت مسکی تو بسط دوتشونه امیر و انداختش زمین بعد هم یه دخمال کرد تو حلبش و باز هم چیز نکرد اونجش هم گرفت فشار داد تا وقتی که امیر مرد، بعد بلندش با خورمان تمام چید یکی اونطوره که این معمولیت با کمال افتخار میپذیره که بلندشون بیاد بره بابا رو بکشه بره برگذه یکی هم میشه سیاوهش که از همه زندگیش میگذاره و چیز رو پیمانشو نمی‌کنه. او دیگر زبانی به این راختی به گفتار نیتو بیارا سه دیگر سه بامیش اون چیزی که حالا بهش میگهم تاریسما تاریسما یعنی جاذبه یعنی لطف در حقیقت یا آدم هستن که آدم اولی که میوینه خوشش میاد از این ها این به زیبایی هم نداره ممکنه که یه کسی زیبا باشه ولی سمپتیک نباشه خیلی یعنی آدم میوینه به افتر چقدر خوشگله این خانم یا این آقا چقدر زیبا اما نمیدیش و گاهی یک کسی که اصلاً ریختی نداره حتی زشتم هم میبینید که تا آدم میبینه دلش مایل میشه به اون که حرف میزنه اون رفتارش و حرکتش و نشستش و برخواستش میگیره این این روش میگن کاریزما و اشخاص همین خمینی با اون لحجه دهاتی و با اون طرز حرف زدن نو مار بود داشت این یعنی توقم بسم الله الرحمن الرحیم یه ذره زار دار گریم کردن توی سوره میگه که یه کسی دروغ که نمیتونن چیزی بگن یعنی آرتستی نبوده، بود مردان نیست این کاریزموس سیاوش کاریزما داشتی. یعنی کسی نبوده که او رو ببینه و دوستش نداشته باشه به‌صورت فیزیک دیوانش سه دیگر که گویی که از چهره تو به همین بر زمین مهر تو میگه هر کی که تو رو میبینه دلش به تو مایل بشه هم طارق میکنه بهشون این حرفا وقت مسئله مهمی که سیاوش به اون میگه میگه که خنیده بگی تی خنیده یعنی مبارک خجسته و, و فرخنده و اینا میگه که ای پیر پاکی زیراسگوی خنیده بگیتی به مهرو وفا از آهرمنی دور و دور از جفا از صفات زشت و دوری اگر تو با من پیمان بکنی من گخیم دارم که تو پیمان من نمیشکنی حالا به من خواهش میکنم بگو که من اینجا بمونم آیا اینجا بمونم بعدی برام نیست گرفتاری برام نیست اگر اینطوره گر, ای... گر از بودن ایدار ایدر یعنی اینجا دیگه میدین گر از بودن ایدر منان است بر این کرده خود نباید گریست این گر چیزش بود جوابش بود اگر حرف شرطه دیگه روسته اگر باران ببارد مثلا با سید میاد و شرطه، اون جزای شرطه میگه اگر اینجا بودن، من بر برام خوبه و بعد خودم بر خودم، بر کرده من نباید گریه کرد خب که تو بشه؟ جزای شرط که نه خجاست میگه اگر موندم برای من خوبه، نباید نرحب بشم اون گریه پنس اومده، اگرم می... نیم؟ کو کو همون ده. اون کوف من نه، نه میگه اگر اینجا برام من خوبه و من به این چیز خودم گریه نواز بکنم که من بگو اینجا باشه اگر نه، خلا ولی این یه قاعده دستوریست من میدونستم که نمیدونیم برای این قاعده من که نگفتم پترم که نخونم بر قدیم وقتی دو تا سه تا جمله شرطی می آمده و جمله جزائی شرط اول کاملا روشن بوده ذکرش نمیکرد میگه اگر مرا اینجا نیکویی هست و من بعد به کار خودم گریه نمی کنم جزاش اینه که به من بگو تا من اینجا بمونم شاید اگر نه اون وقت جمله جزای میره اگر نیست اگر بده به من بگو که از اینجا بکرم چند جمله جمعه شرطی که میاد جمله جزایی شرط اول رو هست می که دلیل اینکه روشنه اینجا خودش میگه که گر از بودنی در مرانی کویست بر این کرده خود نباید گریست که به من بگو تا بمونم اینجا دیگه نمیذارم و اگر نیست جزای شرط نمیاده فرمای تا بود دارن نمای، نمایی راه کشوری دیگر میگه به هم بگو اگر که کار من نکردم اینجا به هم بعد به سرم نمیاد و نباید از این تحصیم که گرفتم جری کنم که من بمونم و اگر که فکر میکنی من تو, تو اطمینان دارم فکر کنی که اینجا قطر هست برمان گرفتاری هست من بگو که من برم راه های کشفر دیگرم من نشون بده که من برم حالا پیران جواب میده بخون تو دردو گفت پیران که من دیشب از این چا اندر گذشتی از ایران زمین مگر زندل از مهر افراسی ها مکن هیچ گونه برفتن شتا پراکنده نامت بگیتی بدی ولی کن جز مردی زدی، خرد دارد و حوش و رای برن به خیره نخوابد از مرا نیز خیشیست با او بخون، همش پهلوانم همش رخنمون، همانا بر این بوم و بر ست هزار، بر این بوم و بر، همانا بر این بوم و بر صد هزار، به فرمان من بیش باشد سوار، هزار آن آنکه آنکه پیش من هم خواهم شب و روز پیش من من خواهم دوازه دا هزار دارم بیش از فرزه هزار به فرمان من با. هم بای همست و کمان و کمان است و بر و بوستن نهفته جزین نیست هستم بطی مرا بینیادیست از هر کسی یکی مال مهرمانه دارم کسی نمیدونه تامی وزرا تو و همه هر چه هر کنی تو به شادی نشعر گرید کنی تو به شادی نشعر تذیرختم از پاکی ازدان تو را برای دل و هوشندان تو را که بر تو نیایید ز باد گزند نداند که راز چرخ بلند مگر که تو آشوب به شهر بیا میزی از دود تریاک و زرق سیاوش بدان گفت خیلو، اینجا... <تصفيق> از اینجا کن بر میداریم از نه، فکرش نکن وقتی آمدی، من بیش یعنی من بیش. از این فکر این نکن وقتی از ایران آمدی این بعد بیگه نراحت نباش، دلم از مهر افراسی ها بر نگردون و هیچ به رفتن چه برای اینکه اسمش بعد در رفته افراسی ها قراکنده نامش بگیتی است ولیکن جوزی نه مردی زدیست که نه اینجور نیست واقعا اون طور نیست خیرت دارد و خوش و رای بلند گفتم که اینا چیز بودن آریایی بودن ترک نبودن برای اینکه در شانونه گفتم که ترک هم تورانی هم ترک نبودن از اولاد تور بودن و اصطلاح فره ای پسر داشت پسرداش ای و سلم و از اولاد تور بودن کرد دارد و خوش و رای بلند به خیره نتا به راه گذن به خیره یعنی بیخودی بی به راه مردم آزاری اینا نمیره. مرا نیز خیشیست با او به خون میگه منم با او قمخشم همش پهلوانم همش لحممون هم قهرمانش هستم هم مشاورشم برنامون یعنی مشاور دیگه بعد میگه من که از تو حمایت میکنم بگم که 10000 هزار سوار به فرمان خود منم خودم 12000 دلار چوب روز دارم محصول اینه که اگر حادثه هم پیش بیاد فکر کن که من از تو 100 درصد حمایت میکنم و ناراحت نباش ده و 2000 اون که خیشه منم تو خواهم چوب روز پیش منم هم اسب و و کمان و کمان همون از بو موبر و گوزفن زندگی همهشون دارن اینا که هستن نهفته چیه سلاح دیگه ممال قایده اماله رو گفتم یادت رفته سلاح در پارسیم که سلیم نهفته جزین نیز هستم بسی هستم یعنی مراه هست. یعنی برای من هست میمش میمه محفولی اکیزتی نوخده این نیاز هستم. بس این مرافی نیازیست از هرکسی. فدای تو با آده هر هرچه هست. من اینجا توی خونه زندگی میکنم یه دوستی آخواتمانی در اختیار من گذشته یه چیز مختصری هم میدم. ولی اجاره اونجا نیست در حقیقت خیلی کمتره. و این جوان هی به میگه آقا هرچی اینجا هست مال شماست یه وقت که اینجا چیزی میخوان چیزی میخوان برده این دست کنه برای کولوت میکنه به هر حال این نشانه اینه که محبتی من داره و این محبت که میخوان به این تفتیق ابراز بکنه و باعث میشه که من یه قدری اگه میخوام دخل تصرفی در کاری کنم میخوام چیزی رو بردارم، میخوام در دفترش رو باز کنم بیام یه دونه پاکت بردارم، ناراحت نباره میگه دیگه. اینم هم همینه میگه، میگه اینو دارم، اونو دارم، اونو دارم، ست هزار سوار دارم، دوازه هزار تا پیش خود من مال مخنت دارم یه مقداری هم غیر از این مال پنهانی دارم، فدای تو به آده هرچه هست گریگ درک کنی تو به شاهدین شخص اگه تو اینجا باشی، همه اینا فدای تو تذیرفتم از پاکی ازدان تو را، به رای دل و هوشمندان تو را، که بر تو نیاید به ها گزن، میگه من حصول که من تو رو حمایت میکنم از این رفتم که کاری کنم که به تو از بکا گزندی نگاه اما یه شرط میداره کنارش. میگه راز چرخ بلند رو کسی نمیدونه در بود شرط؟ چه این شرطه؟ میگه من همه چور از تو حمایت میکنم ولی کسی چه میدونه؟ کسی راهی که چادر بلند این تا حد این خودش میتونه آره گوشش رو باز می‌ذاره برای اینکه بعدا نتونست به محافظتش کنه نرسید با اونجوس یواش میگه ضمن شکره ها و اینا البته پیران نیست میگه پیران تو قرار به کمک من بیا اینا پس حالا کجایی ای؟ یعنی که بعد پذیرفتن از پاکستان تو را به رای دل و عوشمندون تو را که ورتو نیاید ها گزن نداند کسی راز چرخه بلند مگر که از تو آشوب خیزد بشه شاید که از تو لنگ مرد منیش این میشه که تو آشوب بکنی تو. به واسه وجودت شاید آشوب بشه و بیامیزی از دود تریاک و زهر تریاخ رو توجه بفرمین که خیلی خیلی جدیدن اسم اون ماده تریاک شده اسم اون ماده افیونه چون که در همه زبانه پرنگی هم افیوم همینه و در فارسی هم افیونه تا دوره سعدی و حافظه ام. اما تریاک تریاک در یونانی کلمه یونانی استریاکا ها یعنی ضد زهر آروهایی می ساختن ضد گزش جانوران موزی از حشرات، و مار و همثال اینا به صورت قرص می و موادی درش داشت چندین جورم بود یکی اجزایش کمتر بود بهش می گفتن تریاک از یکی اجزاش داروهاش زیادتر بود میگفتن تریاق اوسد و یکی دیگه میگفتن تریاق اکبر یعنی دیگه مهمترینش یک تریاق هم بود که میگفتن تریاق و تریاک هم یکیه یک تریاک هم بود که میگفتن تریاق که فاروق یعنی جداکننده سم از بدن در تمام اینا یه مقدار افیون وجود داشت برای ساکن کردن درد چون گزه حشرات با دردهای شدید همراه و افیون مسکنه بسیار بسیار قویه که وقتی هیچ مسکن تحصیب نمی کنه افیون تحصیب در دردهای پوست چیرونژیکال به اصطلاح دردهای بعد از جراحی جراحی در که او سخون در می میده. یا نیمهت رو این پاره کرده دیگه و هم به بیهوشه بعد که به حوش میده دردای قولناک داریم. یه موشین میزم به بیمار پخت بگیم تا هم این رو از به میگوریم این است که در این تریاغ ها همیشه افیون یه جزءش بوده یه مقداری مواد مفره مثل زعفران نمیدونم که داشته یه مقدارم گوشت عقیی داشته برای اینکه فکر میکردن که حیبونی که این توقید میکنه این زهرو بدن خودش ضد اونه بیده این،, این تصور داشتن من اون چهلی میگه چاره یک اجدان زده کشته یک اجدان بباد میزده را هم به می دارو و هم بباد احراب میگردن پاره میکردن میشن روی به بگیردن این حیبون رو خودش این رو تولید میکنه چیز نمیبینه آسیم ضد به دیگه بدنش. اینه که گوشت افیون رو داشتن این رو شما خب این خود اما چطور شده که تریاف شده افیون بلی ساده یه چیزایی که در جامعه زشته رو نمیارن اسم شرم زن و مرد رو نمیارن من واسمی دیگه میگن. موستراح مثلا اسمش نمیگن اسمش مبرزه. یعنی ببخشید جایگاه گفتگو یا مبال یعنی محل بول ساش خالی برای اینکه نمیگن میگن مثلا موستراح یعنی محل آسایش نمیدونم تواله یعنی محلی که آدم چیزا دست داره بعضی مونترف کنه یا بعد این اسم بعد از اینکه خلا یعنی جای خلوت اصلا معنی نداره بعد بعد از اینکه این اسم کم کم معلوم میشه که همونه عوضش میکنن یه دیگه میکن در این دوره عمر شوهران شد ریستروم شده این اصلا. تو فرانسه میگن لپتیکوان گوشه کوچین بود فرانسان <تصفيق> هم که اینا برای اینکه زشته اون اسم اصلیش فتی مواد مخدر استفاده کردن قبح داره زشته بنابر این رو میگن علف راست علف خود hashish هم یعنی گیاه خود hashish یعنی گیاه در در عربی hashish هم آنگانی علف گیاه اون ماده شخص شاه‌دانه هندی ایندیان کنابی ولی هی شخص کسی نمیگرد. این هم اسمش افیونه. بعد میرفته بابا میخواسته بخره بخاره. افیون میخواسته برای اینکه اسمش زشده اسمی نمیارده. میگفته تریاک داری؟ یعنی ضد زرگ. باید میگرد. هیروین و میگن گرد. گرد داری؟ دوا داری؟ برای اینکه زشد. بعد که این اسم آشکار سود مثل حالا حالا شون دیگه درست جای اون اسم، اون مادر گرفته حالا اگه کسی از کسی بخواد بپرسه میگه چیزی داری؟ جنس داری؟ تلخکی داری؟ تریاکی میگن تلخکی، شیرن میگن سیایی <تصفح> سیایی داری؟ <تصفح> این برای این زشت داری؟ و ایلا تریاک منی زده زهره میگه یه وقت خدای نخواست شاید آشوبی پیدا بشه و تریاج با زهر به هم آمیده بشه یعنی تریاک خواسته زهر تا دوره حافظ این افیون بوده و تریاج و زب زهر بوده تا هشتم میدم دود کشیدن هم بعد از کشف امریکا بشه یعنی پیش از اون هیچ وقت بشر دود رو توی می‌دونه که این سیگاره نکی می‌کنند، بعد بره تو ریه تو دن تون بکنی، پک کنی بیرون، اثری نده باید بره تو ریه تا او حالت شهرستن اینو بعد از کشف امریکا، این ایندینا یعنی بومی‌های امریکا توتون می‌کشتن، توتون هم نبوده توتون نبوده اصلا، در دنیای کهانه بعد اول اینا به صورت چپو. این کارو یاد گرستن، به صورت چپخ کشتن، کیب کشتن توتنوارشان بردن و به سرعت پراکنده شد در کشورهای و شروع کردن به کشیدن دود یعنی بردن دود توی سینه. قبلا یک جا یک اتفاق می‌افتاد بدون اینکه بفهمند. در بابل و آشور یه معبدی داشتن معبد خداییش مثل باکوس یونانیا که اسمش چه بعد شب جشن این که میشده مقدار زیادی بوته شاهدانی هندی یعنی بوته هشیشته با گل و برگ و همه چیش میکندن میریخدن میذاشتن خوش بعد اون خوشتدهشو میوردن تو اون معبد و آتیش میذاشتن روش به طوری که دود کنه ها نه اینکه علاو دود کنه بعد شروع رو میکنم رقص و پاکوگوی و دستافجانی خود به خود میگنم تنفس باید که نعشه می‌ستن خیال می‌کردم که ما خدا بهشون نظر کرده کارشون جا آمده و هیچ توجه نداشتم که این دود حکیشه دارن تنفس می‌کنن اما اینکه یه کسی یه چیزی دستش می‌گیره که دود رو از یه سوراخی وارد ریش بکنه این وجود نداشت. باید از کش چی می‌خواه بگیره؟ چی اصلا دو توریستینه کردن بعد بله بعد اون حالت رو درست کردن برای تنباکو رو طنباکویی که واقعا اون چند بسیار تند و بدیم نمیشه با چوب اونها کشید اونو درست کردن بله همشو. همشو بعد حماش حماش بدون استرس بعد مدت ها توتون اون کشیدن و باقی دیگه چی داره می‌خوردن البته حشیش بود طلیاک بود همین رو بود ولی می‌خوردن نمیدونستم در هزاران صحنه‌ای بسیار زیاد است که از بنگ به قول خودشون به عنوان داروی بیهوشی استفاده میکردن بنگ همون هشیشی که بخورن میگن بنگ خوردنی که بشه الان تو ترون میگن بنگ میکشه اما بنگ میکشه درست نیست کشیدنی رو باید بهش میکن چرس ولی خوردنیش میشه بنگ که توی دوغی درست میکنن در بشه آوی زره هشیش نیزم توش و زفرون علیم چیزا بهش میگن دوغ وقتت بعد میخورن حالتون جاا که آفیونو ه اینا رو میخوردن. بعد از اینکه توتون کشیدن توتون کشیدن دود آمد به همه دنیا پخش شد بعد ااشقیاب کردن که خب حالا ببینیم که هشش هم آیا از همین راه میشه کشید. این است که آمدن به هش گذاشتن آسی کردن با توتون و اینا؟ توی سیگار یا روی چپاق برستن هم و من که جوون بودم بچه بودم جوون جبون بودم بیادم که تو قبخانه ها بود بعد اون جایی که هشیش می گفت میگفت که مثلا حسن آقایه چپاق سواره واسه درست کن <تصفيق> چپاق سواره یعنی هشیش خیلی با ثقت توتون میریختن اون زیرو بعد یه خود هشیش خورد میکردن میریختن روی او بعد یه مدار توتون دیگه می روش سر چپاق گونده می شد مثل توپاقهای عادین هم بعد روشن می کردن دست به دست می گرش سواره روش هشش افیون رو هم خواستن و همون تردید بکشن نمی شد که افیون زوب میشه بر و روه و عادیش رو بزاید می کنه منبال نمی شد قاطی توتون و اینا نمی شد این است که در کشورهای دیگه غیر از ایران چراغ درست کردن که تو فیلمای چینی و اینای که در هنکونگ اینا هست دیدین شم اون زیره یه دستگاهی هم هست که در ایران بشنیگن نگاری با نگاری با چراغ در مقابل آتش میکشن در ایران وافور درست کردن حرارت شم حرارت چراغ 1200 در جهه سانتیگراده دار که حرارت قرمز، یعنی حرارت ذغال فقط 600 درجه نیست. بنابراین دودی که از وافور گرفته میشه به مراتب سالمتره و کمتر ضرر داره تا دودی که از شراف می گیره. وافور رو این درست کردن هم. کلمه وافور هم از کلمه وافور فرانسه معنی دود و بخار گرفته به طور خاصه. معنی که در همون روزگار کشتی‌های مطوردار هم میگفتن وافور یعنی وافور یعنی... یعنی کشتی دودی، کشتی کنطوری هر <تصفيق> دیگه هر اره دیگه، فنساش وفق شده وافور و ارز کنم که با وافور میکشیدن و جاهای دیگه با چراغ میکشیدن تریاد بعد ایرونی های اختراع تازم کردن اون از که سخته شد چون تلیار که با واقع که بشکن نصبیش زغف میشه میره تو اخه این سوراخ ریز خیلی از اون سراخ تلیار که زغف شده میره اونطور اونش سوخته هر ده گرم تلیار که پنگ گرم سوخته نصبش میده اون این سوخته رو گرفتن جشون در آبش گرفتن، آب خرابش هم ریختن دور، آبش گرفتن، صفر کردن، شو چنده؟ هم شیره رو دیگه با آفور نمیشه کشید، اونو با چرا آفور میشه؟ ان همه چهار چی بده. نه دیگه. آره، اون چه مشتری است. که خلاصه چراغ درست کردن، حالا هم که دیگه عشقیا برای اینکه با وافور کشتن اینام نسبش دایی میشینا حالا یه چیز درست کردن شبیه قلیون که البته این اختراعش هم متوجه ایرونیا نیست اینجا جماعت انبیکایی و عراضل اینجا برای کشتن کوکاین یه چیز درست کردن این قلیون منطقه اینقدر خیلی کچون بود چیز داره آق توش برای, برای کوکاین درست کردن بعد ایرانیا یه سیستم یه خود بزرگتر شد درست کردن عین همون که آهن رو می‌ذارن جلو آتیش داغ میشه سرخ میشه میگیرن می جلو طریا و با قلیون می‌کشن اسمش رو گذاشتن قلفور <تصفيق> از ترکیب قلیون و وافور اسمش شده قلفور واه از کردن که چون خیلی بیشتر مقروونه به سرفه است یعنی مثلا شما حالتی که با کشیدن یک گرم تریاج با واپور براتون حاصل میشه با کشیدن یک پنجام گرم با قلفور هم حالت پیدا میشه این است که دوستان عشقی اینجا همه دستگاهشون تبدیل کردن و غلپور دیگه زغال و پاکستر و منقل و اینا هم نمیخواه هم نشون میتونم؟ تهرونم چنده هم که با بعدون فقیه هم بعضی زندگی بعد اینها باب چیز بیشت <تصفيق> همه اینا رو گفتم اول میخوردن همیزم سانی هستن همیزمی زیادی هستن که به خوردن عادت ده بله خیله بسیتونه بگیزید <تصفح> <تصفح> امیدوارم نعشی شده باشیم با این بکا ارز کنم که این اونم زهر رو میگه سیاوش بدان گفته رام گشت صرف روخت و اندر جام کرد. شد یه درش راحت شد رنگ روش آمد و آماده شد برای شواب خوردن ساعت چنده آرش؟ ساعت ساعت هم نکنی خیلی به خوردن نشستن یک بازیگر سیابوش به سرگشت و پیران پدر برفتن با خنده و شادمان برفت بر نجستن جای زمان برفت بر نجستن جای زمان این تا رسیدن بشت بشت به بهشت به بهشت به بهشته هست به بهشته گنگ ولی بر ضرورت شعر و دخونیم به بهشت به گنگ که آن بود خرمسرای درنگ پیاده دو کوی آمد افراسی از ایوان میان بسته و پرشت هاست سیاه چون او را پیاده بدید برود آمد از عصف پیش پیشش روی گرفتن مدیب دیگر را به بر، همه بوسه دادند بر چشم و سر. از آن پس کنین گفت افراسی که بعد در جهان اندر آمد بخواب. از این پس به نه آشوک، از نه جنگ، با آبشقه را و با آبشقه را آیند، میشو پلنگ. بر آشوک، طور دلیل، کنون روی کشور شد از جنگ سیز. دو کشور همه سال پرشور بود، جهان را دل از آشتی پور بود. به تو رام کنون برای آسایت از جنگ و از جوش و تونی هیچ به خواسته فکرش نمیرسه که این تون سیاه تمام اون گرفتاری یه رو تازه میکنه دو برد بگو کنون شهر تورانت را بنده اند همه دل به مهر تا آگنده اند مرا چیز با جان همه پیش توست سففت به جان و به تن پیش توست همه شاد دل بادی و درست. همه گنج بیرنج در پیش توست پدروار پیش تو مهرآورم، آورم همیشه پر از خنده چهره آورم برم بر او آفرین کرد سخت که از گوهر تو مبر را بر سپاس از خدای جهان آفرین که از پمخاش آرام و کین سپختار دست سیاهوش به دست بیامد به تخت مهی برنشد به روی سیاوش نگه کرد و گفت که این را بگیتی ندانیم جو ندین گونه مردم بود در جهان چنین روی و بالا و فر مهان وزان پس پیران چنین گفت رد که کاووس پیر هستند اندک اندک رد, رد که بش پی بعد از روی چون این کسن چنین گرز باهدا بود بالا و, و, و چندینونه مرادیده در خواب خوب, خوب دیدار او در خوب دیدار و دلم خیره در کار او که فردا باشد کسی را چنین دو دیده در زمین از ایوان هایش یکی برگزی. همه کاخ زربه افتا گسترید ام. یکی تخت زرین نهادند پیش همه پایه ها چون سر گاف میش به دیبای چینی بیاراستند فراوان پرستندگان خواستند بفرمود تساروت توی کاخ بباشد به کام نشینت برا سیاهوش تو در پیش ایوان رسید سر تاق ایوان به کیوان رسید بیامد آن تخت زرین نشست خوشیوار جان اندر اندیش اندال اندیشه <متحد> چو خان سفعد بیاراستند کس آمد سیاوخ را خواستند ز هر ای رفت بر خان سخن همه خامی فکندند بون چو از خان سالار برخواستند نشستند گه می بیاراستند برفتند رود و رامشگران به باده نشستند یک سر سران. به دو داد جان و دل افراز یاد همه با تمی بی <متحد> همین خورد می تا جهان تیره شد سر میگوساران زمین زمه خیره شد سی به ایمان به ایوان خرامید شاد به مستی از ایران نیامد چیا بدان شب حمندر به فرمان شاه بدان کس که بودند بر چون چنین گفت باشیده افراسیان که چون سال بر آورد که چون سر بر آورد سی آوگوست تو با پخلوانان و خیشان من کسی تو بود مکتر انجمن به شبگیر، با و با غلام گران مای از این بزردین ستان دلشکر همه هر کسی با نسار ز دی دی دینار و از بوهر شاخوار بر این گونه پیش سیاهوش شوید خوشیوار و بیدار و خاموش شوید فراوان سففت پرستاد چی؟ وز این گونه یک هفته بگذرش نیست اینجا چیزی نداره دیگه فقط اول بعده افراسیاب که میگه که کابوس پیره و اندک خردی کسی همچی پسری میشه داشته باشه بعد دلش کنه چشمش به دور دنیا باشه برای آدمای دیگه و پسری که همین گفتن چون کاریزما داشت بعد میگه که افراسیاب اومد و در چیز، بر بهشت گنگ که رسیدن افراسیاب آمده بود و دیدن هم دیگه رو رفتن و مسائل رو دید بعدم میگه یکی از کاخ‌هاش رو انتخاب کرد آرائش کردن و چه کردن و و تاعت ندرن به دیوار آراستن و پرستنده خواستن و بعد هم و مهمانی کردن و صوب داشته هم میخوردن و عشق کردن و وقتی هم که خواستن برن افراسی ها پسرش پسر بزرگش شیده پسر پهلوانش پسر خودش خاص و گفتش که وقتی از خواب پرخواست شما اون وقت با همه پهلوانان و ناماوران موزفی که با حدیه و با نسار و با صحفه ها و جایی که من آماده کردم برید و در حقیقت حدیه بشید و برید اینجوری رو به این دیندش یک هفته هم در این ماجرا ها گذاشت. حالا اگر سؤالی هست با تو بپرسی میکنم یک سؤال راجوه این برپورده افراسیاب و سیاهش اینه اینقدر دوستانه با هم برپورد کردن هم همیه در آبوش کنست اینا که اینطوری مادرس حولش آماده به جنگ بودن اینا مسائل سیاسی اینا همینطور همشه دیگه بیدیم آقای رخصنجانی میگه برادر هم صدام رسیم این برای اینکه این, این دشمنی شخصی که نیست یه وقت شما با من خوده حساب دارید ما با هم من شما رو آزار کردم یا شما بعد تلافی کردید و خلاصه با هم بد خب میگه هم ولی داری هست که کار مملکتیه و بد دلایل شما مال نماینده یه دستگاهی هستی یا می خوای اون دستور من منم مال یه دستگاهی هستم می خوام وظیفه انجام بدم اینجا با هم مخالفت هم میکنیم جنگ هم میکنیم اما دشمنی شخصی با هم که نداریم که این یک دومی که افشا میگه میگه همین میگه که چشم دنیا از آشتی اصلا دل دل, دل دنیا از آشتی کور بود همش خونریزی بود حالا با این آمدم تو که دیگه به کلی اون گرفتاری و اون خونگیزی و اون جنگ و ستیز تموم میشه گوه اونجا پیران اولا مگر هنو شاید بخشه پیران زمن پیشبینی هایی که میکنه تو قبلشو بخونم که من تذیرفتم که همه جور تو رو حمایت درسته وقتی که سیاوش بعضش خوش خوبخوشه و شاه خوش نظر خوش داشته بوشه و اینا حمایت موردی نداره که حمایت مال وقتیست که بعد بعد میشه درسته بعد میگه که من همه این کارا رو حاضرم بکنم مگر یه وقتی که از تو یعنی به خاطر وجودت، یه نرخری بلندشه بگه آه این شادود ایرانین چکا هم کنم چرا اینقدر بشه؟ این ربطی به سیاهوش نداره بعدم شروع کنه شروع کنه آشود میگه شا... مگر این که از موجود تو یعنی به خاطر تو آشود در ممکت پیدا بشه و تریاک با زهر آمید بشه اونجا ممکنه که من نتونم کاری باشه اینجا مگر بهت معنی شاید نیست؟ هردوش هست دیگه هردوش چرا؟ معنی تردیدم داره برای اینکه تیران نمیده که حتما که ممکنه یه همچه وضعی پیشه این نمیدونم که خب ارز کنم که دیگه کسی مطلب مطلبی ندارید بگو این شیده پسر افراسی ها بوده باید, آه. باید. آه. شیده دختره این جختره نه ها اولاً, که... اولا که شیده پسره به خودی میزهد رو نادانی مثلا. تو <تصفيق> این که بعضی, بعضی اسما هست که اسم پسر و دختر هر دو هست مثل نصرت نصرت یعنی یا یاری و پیروزیه میتونن اسم دختر بزنن اسم پسر هم میزنن منطقه میکنه نصرت کانوم، میکنه میکنه نصرت اولا هم سن مخافش نصرت بعضی اسما هست که مال زن اومد نیما رو الان برای دختر میتونن پسر هم میزنن دارالکه کسی که این اسمو اختراع کرد اصلا هیش از اون نبود نیمای بود که اسم اصلیش علی اسفندیاریه میدونید که از خانواده اسفندیاریه و گفتن که نمیدونم درست یا نه گفتن که معانی رو اسم اون پیغمبر و نرقاشون رو, نرقاش. رو کرده شده نیما و حالا هم موزن موزن اون این اشکالی هم خیلی نداره به خصوص که توجه داریم که ما در زبان فارسی اصلا مزاکه موهنف نداریم مثل انگلیسی میانه بنابراین اشکالی نداریم در, در زبانه فرنگی هم میشل هم برای زنها هست هم برای مرد پاسکال هم برای مردها هست هم برای زنها هست لاغل در فرانسی بنابرای انگلیسی رو خوب نداریم اشکال نداریم ها یکی از یکی از ماده های کینه در این داستان گوی زدن داستان رو زود میخونیم رد میشیم ولی من دو نصف مهم رو براتون بگم یکی همین که گفتم که اینجا یکی دوتا از این پهلوان ها رو که بعد یکی از همون خود اون آدم سر سیاباش میگوره سیاباش مثل برچ و بغرش میکنه و خوبصور سیاه این این چینه سیاه شده و تبدیلی شده که از دوشمانم بزرگ سیاهش که پاپشن دمور و گرونگی ذره اسمش کنه دو جایی از کنم که نکته دوم این است که اینجا به خیلی قشنگ و با ذکر جزیگی به قول شما با دیتیل شرح بازی چوگانو میده و این سند بیش از هزار سال به اون بشه یعنی این جزئیات بازی چوگانو که پردوسی شرح مال از هزار سال به اون طرف بشه یا مال خود دوره پیش از اسلام یا اقل مال دوره خود تا هزار یه،, یه بیشتر که نمیشه. و خیلی از اینجا جالبه یعنی خیلی کم جایی هست که باید چوگان زدن به این قشنگی تعداد افراد یاد گرفتن نمیدونم مسائل دیگر رو جزگی ها تو گفته باشه که این تو هست حالا بخون که تو باید یعنی شدید گوی زدن چی هستش؟ چوگان واضیه بگید گوی اون ده. اون توپه کچه رو میگن که میزدن بگید گوی چوگان دیگه گوی اون چوگان شابید و اصیاوش چنین گفت: چا که پرده بسازیم، پردا و پزاه که با گوی و چوغان به میدان چویم، زبانی زمانی به بازی و خندان چویم. بسیار فر. بسازیم یعنی پردا آماده میشه. پگا هم طور بزید. بعد زه هر کس شنیدیم شنیدیم که چوغان تو نبینند گرد. در گردان, گردان, گردان، به میدان تو. میگشندم میگشندم که خیلی خوب چوغان ماچین. چوغان تو نمیتون ببینه از سرعت. بعد بدون شاه انوشه بدی روان انوشه را بدی. انوشه بدی روان را به دیدار توشه به تو شاه توشه به دیدار توشه بدی. بدی. بدی یعنی دیگه گفتم حالا بله از تو جویند شاهان هنر کیابت به هر کار به کار از تو گذرد مرا روز روشن فرمان تو همه از تو خواهم بدوید جز چنین پاسخ آوردش تو <تصفيق> پاس افراسی هاد.. که چون تو نزاید کس از ما و به مردی و رادی و فرهنگ و خوی به دین آشتی تو شدی نام جود نباشد تتو... کس تو کس کسر زیر سپر چو تابند ماهی تو تابند تابند ماهی تو ماهی جو... چه تو فرزند ماهی و زیبای گاه تو تاجکیانی و خشت سپاه زیبای گاه گاه من تخت هم یعنی برازنده اصلا اصلا زیبا به خوشگل نیست زیبا یک خفر داره به خوشگه زیبا به عنی است زیبای گاهی یعنی ایو تحصیلی بهت میاد اون هم که بگن بهش میاد برازندگی زیبایی بب به شبگیر گردان به میدان شدن گرازان و با روی خندان شدم شبگیر گفتم تو به زوده گرازانم یعنی قلمزنان چون این گفت پس توران به دوی که یاران در زخم بوی زخم گفتم برای تو منی زربست یعنی زدن یار بگیریم من امکنه که تیم درستانگی یاد اینو در فارسی میگن یار ما ما بچه که بودیم برای الکترائی بازی این هم یار بگیریم بال می‌کشم، یار می اینجا میجان. ما ما میگفت یاد دیگه. بعد دو نفر میمادن، یه اسم مستعار می‌ذاشتن روی، میگفتش مثلا اینکه می که میخواد بالون جنگی، کی میخواد اتور فرنگی. مم. یکی اسم نوشته بالون جنگی، ما به طور بطریکی منه. اولش سالی که من بالون فکرام که هواپیما بالونه، بالون بود. کی میخواد بالون جنگی، کی می‌خواد اتول فرنگی. یکی از اون عثمان گفت من می‌خوام اتول فرنگی، گفتم برو بالون. جداً یافت ترتیب یادت بعد ببین چون این گو پادشاه توران به دوی کیاران یاران در زخم بود تو باشی بدان روی و زین روی من بدون نیمه هم دین نشان انجمن سیاوش چنین گو با شهریار که کی باشدم دست و چوبان به کار ببینید اینجا افراسیاب میگه با هم دو زمین یه طرف تو باشو طرف هم من سیاوش که پرورده دست روستنه در آداختانی و تعطیبات و اینا نه اوالا من هرگز در برابر شما بازی نمی کنیم کی در براور شما واضی کنیم اصرار زیاد که نه شما هاید واضی من بازی نمی یا نمیتونم میگی که طرف شما بازی نمی کنیم دوبروتون بازی نمی بگو براور نه یارم زدن با تو بود امیدان هماورد, هماورد دیگر به جوه میگه من، من با شما چیدم با یکی میگه بزن سزاوار یارتو هم بر این تهمیدان سوارتو هم میگه اگر فکر مونی که من قابلا هم در طرف شما واضی میکنم روبروتون واضی نمیکنم سپه برز گفتار او شاد شد سخان گفتن هر کسی باد شد به جان و سر شاه کاهوز گفت که با من تو باشی هما ورد جو قسمش میده به جان و سر کاهوز که چیز که تو رو برو من بازی کن نخام وزده به پیش سواران طبی بدان تا نگویند کوبت بزید کنند آخرین بر تو مردان من چه گفته شب از روی خاندان من؟ حالا این یکی که افراسی نظر خوب داره تو من رو برو من بازی کن برای اینکه هنر تو رو مردان من ببینن و اینا تو ارادت دارن چه دارن ولی همین کاری که از روی حسنیت دیگه و طبیعیست که سیاه که قهرمان در جیگه که گیروز میشه اونای دیگه و یار ایرونی میگیره از ایرونی هم میگیره یار گویزادن بعد میگیره که اینا معلوم دهن به قهلبی و اینا میگه که آقای صدر کتابی همه اینجور چیز نکنیم اینا رو که اونا بازی رو ریتمش رو آهسته میکنن بعد ها که ها که ولی خب خوشونه یا تورانیدگیه کسی بیاد غریبه به قول خودشون یا به اینجوری بمعلومشون به هم اینجا بگو سیاهوش بدو گفت فرمان تو راست سواران و میدان و چوگان تو راست سو وقت کرد گرباد را چکرسی وز و جهن و فولاد را اینو یاران افراسیار با تو پیران و نفس این هنه جنگ جنگ چه که این ایمان جان که برداشتی ز خوف به ناز سیاوش فرستاد یار چه روئین و چون شیده نامدار دیگر اندر ایمان سوار دلیر تو خواست مدفکن نرشید سیاوش چنین گفت که یک نام از اینان پیارت شدند که یارت شدن چه بودند پیش دور از عمر هم برای یاره خود چندخاب کرد یا مشتم از قهرمانان توران و با من یار سیاوش انتخاب کرد که البته بعد نبودن، اما همهشون طورانی بودن. میگه خوربان این که کمی <تصفيق> یار شما مخصوصش اینکه با هیرونی ها بازی کنیم. میگه به نظر سیاه باش فرستاد یا تو روین و روین و شیده و هندر ایمان و کسانی مثل خب، خواه، سیاه باش گفت جاوشتینین گفت از اینا که شدن که شدن که شدن گوی میگه اگه افراسه بخواد گوی بزنه خودوه این آقا میرن روبروش بازی کنه. <تصحیح> نمی که جورت رو نمی کنن همه یار شاه هم دو تنها منم نگهبان چوگان و یکتا منم گریدون, فرمان شهر گریدون شهر... که گریدون که فرمان دهد شهریار بیارم از ایران به میدان سواد یار باشن برای دار باشند برای زخم بود تون تون نخون قسمت شد هم که نمیخونید هی hey میگم شبین درسونو بخونید نمیخونید سال تموم شد بازم نمیکنید بعدا وقتی نمره کم بدم میگیم چرا نمره کم دادی اینو راستی بهتون بگم که ممکنه بعد مثلا ببینید که یه کسی که سوادش یه خورده کم نمره خوب گرفته یا به اندازه کسی نمره گرفته که سوادش بیشتره و از این گرگران با تو من ولی کار نمره دادن با من با هیچ نیست و من البته نظری به هیچ کس ندارم اما خیلی چیزار رو مراهات میکنم کوشش دانشتوری که برای این درس کرده حساب میکنم درستی که یکی کسی که مید تو این کلاس سواد داره سوادش مثلا فلان قدر، فلان نمره میدی اما کاری که در سه سال باید بکنه و هیچ کار نکرده و یکی دیگه که سواد کم داشته، نداشته، خود تو کشته حالا هم از که ضعیبتره، اما خیلی کار کرده این دوتر که نمیشه یه جور نمره داد یعنی به کار اون باید نمره داد و یکی که بلد روز اول باید دیدش که این مدت که اومده اینجا چیزی بهش اضافه شده یا نشده اگه نشده که اون رو اول چه باید بشتا اینکه چیزی بهش اختیده نشده س نخواستم بگم که بعد اگر دیدین که یه وقتی دیدین که مثلا یک کسی که به نظرتون میاد که نمرش باید کمتر باشه دیدین بیشتره یا یکی کسی که فکر می کرد خودش می دوستی نمرش بیشتره کمتره فکر نکنه که من طرف کسی رو گرفتم یا به اون خدای نخواست زلم کردم نه من یه چیزای دیگری رو هم رعایت می کنم ازار چیز رو و بر اون اساس نمره میدم یکیش هم کاری که در این کلاس می در برزن به پیدراتون رو آماده کنید بعد اگه بشید من وقت نمرتون رد نخواهم کرده یه روز معین امتحانی یه روز معین نمره ها رو بدم و تا اون روز بعد همه پیدرات شما خونده باشه و من میخونم همه رو وحجب نمیکنم کنم نمره یعنی متاسفانه وقت میتونم وقت عزیز خودم رو که دیگه خیلی هم زیاده نمونده ولی میذارم این کار میکنه اینه که چیز نکنی زودتر چیز کنی بیارین بدین برای برو, برو. مرای یار باشند بر زخم گوی بران سانک آین آین بابد در دو روی ایجا اجازه ف... میدین من از ایرانیا بیارم بیاره خودمو سپفت رو بشنید از اون داستان بدان داستان گشت هم داستان گف قبوله یاوش از ایرانیان هفت مرد گزین کرد شایسته کار کرد خروش تبیلز میدان بخواست همین خاک با آسمان گهش راست. از آبای سنگ و دم کررنای کررنای کررنای همونه که شده کرنا دیگه نه نسته کرنا مثل بوغه با چیز تو می درست این یه مترانین طور شدیم اون ما یه صدای داره صدایش به نظر اون نزدیک شدن آدم آهسته نداشت میره ولی خیلی دور میره این بعد تو گفتی به بیت میدان زجای سپهدار گوییز بالا بزن گوییز بالا بزرد گوییز بالا بزرد تحب بزر. بزر. رندر آمد چنانچون سه زرد سیاهوش برنگیر پس به نبر چون گوی اندر آمد نهشتش نهشتش به گرد نهشتش به گرد یعنی نه ازش دوید و بزده بود که به عب رسیده بود خیلی فرانده بود یه سیاهاش خود چه رسونه نه ازش یه کوی گفت زن هم وسط راه فرشید بله بزرد همچنان چون دو میدان بسید به که از چشم شد ناخدی بفرموند پس شهریار شح... بلند که گویی به نزد بگوی... سیاهوش برند سیاهوش بران برن گوی برداد بوست برآمد خوشیدن نای و کوست سیاهوش به اسب دیگر برنشست بی انداخت. آن گوی لختی به درد وزان پس به چوگان بر او کار کرد چنان شد که با ما دیدار کرد ز چوگان او گوی شد ناپدید تو گفتی سپهرش همی برکشد به میدان در اون اسب چونان, چونان, چونان نبود عصر چونان نبود حسر سیاهش، سیاوه عصر سیاوهش اسمش بهزاده اسم عصر بهزاده و چون سیاهه بهشون میگن شبرنگ بهزاده رول مهمیم در این داستان داره بعد. کسی را چنان روی خندان نبود از آن بوی خندان شده افراسیه سر نامداران بر آمد زفا. که آواز گفتن فرگ سوار ندیدین برزین چونی نامدار که نامدار که نامبر گفت از اینسان بابد هران کس که با فر یزدان بابد ز خوبی و دیدار و فقر و خونر ندانم که دیدنش بر... به ارخور ارخور این چی؟ این دیدنش بهتر از... یعنی که نمیدونم دیدنش بهتره یا شمیدنش پس یعنی هر در حد اعلی است. به خوبی و دیدار و نه ندونم که دیدار یعنی ریاپاشی. به خوبی و دیدار فرح و فر نه ندونم که دیدنش به ار اگر ظنی یا در شانه زیاد می آهد. اگر ظنی یا ارخباب. باشه. زمین دان به یک سونهادن گا بیام از <تصفيق> نشاط سفر او وقت چنین به تاق بیدار او شاه شد شاه شاه تو چنین گفت پس جو که میدان شما چوگان و گوی همین ساختندین دو لشکر نبرد بر آمد حمی تابو کرشی گد چترکان بتندی بیاراستند حمی بردن گوی را خواستند سیاوش گشت از ایرانیان سخن گفت بر پهلوانی زبان میدان بازیست گر کارزار بدین گردش و شو کار و با کار و بار, بار. میگه که شاه یکی تو تو بوی زدن و اماید بیرونی <تصفح> <تصفح> بعد بازی رو بغدار کردن به ایرونی هم و دورانی یه خورده اینا داشتن خشن بازی میکردن دیگه <تصفح> می مراحت شد از رفتار ایرونیا که این میدان بازی میدان جنگ که نیست. که میدان بازیست گر که میدان بازیست گر پاردار اینجا میدان بازیه میدان جنگ داری اینجا چیده یعنی کتابیه یکمید خیلو اینا شدین ایرونیا همراهان سیامش بای که باش رفته بود بس. اینا موزند یا بند ندیگه بودن میگه چیزی ندیم سه سو سوالی اون کاغذ انتحانی رو هم بدیم بله این شانه روز برده و بروشانه روز برده و باستانه سرد خیلی با این دیگه این چیز دیگه این, این روی قدیمتری ترین هاست این نصفه هیه آقای خالدی قدیمتری نصفه های شانه های برده همون این الان این از آنه معتبرده میده، ولی، میده، چرا؟ نیده. صفتار هم در پیران کردن سیاوش با افراسی ها؟ بده، صفتر پیران نیست اینجا؟ نیست که نیست که نیست که نیست که نیست که نده دیدیم همه؟ خلابی میگه فرده اینا در دوره ساسانی تصمیم شده این داستان ها و خب در دوره ساسانی همیتون فعلبی تصمیم زدن همان روزین بگید پس این کاغذه فلی باشه از کفی میتنم